اعوذ بالله فی العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام على نبینا و آله بحث ما در استعاره تمام شد و حتی بلاغت استعاره رو هم با همدیگه خوندیم که آخریش هم شعر زیبای مرحوم شریف وزی بود که نصر و قدم اپل جویوب و بناما ما بنا اشواقی که نصر و ها؟ که سرقت رو برای دم به کار برده بود اونم در جویوب معلوم میشه که گفتیم عشقهای خودشو تشبیه کرده به مروارید و مرواریدهای غلتان رو که عشقها باشه میگه ما میدزدیدیم و مینداختیم توی گریبانمون یعنی در واقع استاره مکنیه اصلیه است دم عشق ها تشبیه شده به مروارید سرقت از لوازم اوست و, و سرقت کردن و انداختن در گریبان برای دم ثابت کرده خیلی زیبا تمام شد اگه یادتون باشه گفتیم مجاز دو جوره یه مجاز لفظی داریم یه مجاز عقلی مجاز عقلی بعد از این درسه مجاز لفظی این آخرین چیزشه که میخونیم. مجاز مرسل بعد اگر یادتون باشه گفتیم مجاز مرسل مجاز مرسل دو گونه است مجاز مرسل دو گونه است یکی مجاز استعاره که علاقه چیز ببخشید. مجاز لفظی دو گونه است یکی مجاز استعاره که علاقش مشابهت انواع اخسانش رو خوندیم یکی هم مجاز مرسل که علاقش غیر مشابهتی که امروز میخونیم پس مجاز خودش به دو دسته تفصیم شد مجاز لپسی، مجاز عقلی مجاز عقلی رو بعد از این درس که مجاز لپسی تموم شد مجاز لپسی خودش دوتا یکی علاقه مشابهت استعاره که همه رو خوندیم و تموم شد یکی مجاز مرسل که علاقش غیر مشابهته و انواع و اقسام علاقه ها رو داره که امروز مخواهیم بخونیم درست شد؟ خب بعد اگر یادتون باشه باز هم گفتیم گفتیم هر کدوم از این دوتا مجاز ها چه مجاز استاره چه مجاز مرسل خودشون دو قسم شن یه قسمش در مفرد یه قسمش در کلام مفرد استعاره های مفرد رو خوندیم استعاره های در کلام که همه استاره تمثیلیه بود خوندیم شد در مفرد و مرکب مرسل هم باز به مفرد و مرکب تقسیم میشه پس اگر بخوایم شاخه درست کنیم میریم مجاز به دو دسته مجاز لفظی که لغوی میگفت مجاز عقلی مجاز عقلی هنوز نرستیم مجاز لفظی یعنی لغوی به دو دسته یک علاقه مشابهت استاره دو علاقه غیر مشابهت مجاز مرسل علاقه که مشابهت باشه استعاره هست خوندیم خودش دو قسم شد مفرد مرکب مرسل هم دو قسم میشه. مفرد مرکب امروز میخوانیم درست شد پس بنابراین دو سه بار تکرار کردم که شما تا سر مطلب بدونید کجا نگاه کنید مجاز مرسل رو میگه المجاز المرسل کلمتون اون چون قسمت مرکبش کمه درست شد اون رو توی با قول خودمون هاشیه گفته هاشیه دو رو نگاه کنید و من المجاز المرسل نو اون یقال نفو المجاز المرسل المرکب دو قسمه مفرد مرکب مثل استاره ولی مفردش خیلی خیلی زیاده یعنی 90 درصد 95 درصد مفردشه 5 درصد مرکبشه مرکبشو تو حاشیه گفته یادت کتاب دیگه ولی استعاره هم مفردش هم مرکبش زیاد بود لذا مفرد و مرکب رو دوتا شد مرکبش که استعاره تمثیلیه بود یه درس گفت درست شد المجاز المرسل کلمتون یا باید بگه ترکیبان درست شد و ترکیبانش رو تو پایین تواشی دو گفت کلمتون استعاره ملت غیر معناها الاصلی کلمه یک که استعمال شده در غیر معنی اصلی خودش از معنی اصلیش درده بیدون لعلاقت غیر مشابهه. به خاطر علاقهی که اون علاقه هم غیر مشابهته چون مشابهت باش میشه استاره من قرینه هم داره بعد منعه اراده تن معنی اصلی با قرینه که جلوی معنی اصلی رو میگیره قرینه مانعه است که بفتیم همه مجلس فقط فرقش با استاره در اون غیر مشابهه. اون یه کلمه غیر اینجا گذاشته و تعریف همونه درست شد اونجا علاقه مشابهته اینجا علاقه غیر مشابهته درست شد حالا اگر علاقه غیر مشابهت باشه اونجا که مشابهته یه دونه علاقه بیشتر نیست اونم مشابهت. اینجا که غیر میشه علاقه ها زیاده نگاه کنید سببیت و من المجاز من که میگه من بعضیگه هست یعنی بعض من, مج... من علاقات مجاز المرسده از انواع علاقه مجاز مرسل اینه از سببیت و یک المسببیت و دو الجزئیت و سه الکلیت و اعتبار ما کان گذشته پنج اعتبار ما یکون شیش که با یه یعول هم بهش میگن تو اصطلاحات اعتبار ما یعول یعول با دوتا واو مینویسید و واو اول همزه هم میذارید آل یعول و یعنی رجع یرجع اعتبار ما یکون یا ما یعول المحلیتو الحالیتو فقط هم این ها نیست علاقه مجاورتم هست علاقه لازمیت و ملزومیت هم هست نه علاقه هست دیگه وقتی ما هفشتوشو بخونیم دیگه یکی که دوتش هم این ور ور باشه شما متوجه میشید که علاقه چیست یه تبصیره که قبلا اینو گفتم اسم علاقه مجاز مرسل اسم اسم علاقه مجاز مرسل از اونی گرفته میشه که در عبارت هست از اونی گرفته میشه که تو عبارت هست یعنی چی؟ یعنی اگه سبب گفته شده سبب گفته شده و اراده مسبب شده علاقه میشه سببیت اگه مسبب گفته شده اراده سبب شده میشه علاقه مسببیت اگه جزء گفته شده اراده کل شده میشه علاقه جزگیه. کل گفته شده اراده جوز شده علاقه میشه کلیت این رو یاد گرفتید اسم علاقه اشتباه ننیمیسین ها و اشتباه هم نکنید هر کدوم که توی عبارت هست اسم علاقه ازونه. پس اگر مثلا فرض کنید یه محل گفته شده و اراده حاله در اون محل شده علاقه میشه محلیت درست ش محلی پس اسم علاقه رو ما فهمیدیم از کجا به دست میاد هشتا علاقه رو گفته بروس شد هشتا علاقه آیا همین هشتاست نه خودش میگه من علاقات المجاز المرسل پس بیشتر از این هم هست بیشتر از این هم هست مثل علاقه گفتم مجاورت علاقه عالیت آل و لام و آیا با کلا آلیت یعنی آلت رو بگیم و فعل اون آلت رو اراده کنیم مثل این که مثلا من میگم قلم فلانی رو دیدم واقعا شیفته قلمش شدم چی نوشته بود؟ خب ببین قلم فلانی رو دیدم ها؟ یا این از آثار قلم فلانیه نه این قلم فلانی رو شیفته خودش یعنی منظور اون قلم پارکر یا قلم نوع فلانش که نیست که منظور از قلم آلت رو گفتیم و اراده بگید اثر اون آلت رو کردیم یعنی کتابت فلانی آه. نوشتار فلانی رو دیدم شیفتش شد خب پس این میشه علاقه آلیت آلت رو گفته و اراده بگید اون چه که از این آلت بر می آید گفته مثل اینکه میگه ما هر نبیگی را ارسال کردیم ما انبیای خود قرآن میگه ما ارسلنا نامن رسولن الا به لسان قومه ما به زبان قومش فرستاد زبان گفته و اراده بگیر یه زبان و اراده اون چیزی که از این زبان برمیاد یعنی لغت به لغت قومه علاقه عالیت مشخص شد آلت پس یا علاقه مجاورت یه نفر کنار ستون نشسته شما میگید به کی گفتی اینو میگم به این ستون گفتم نگاه کن اون نشسته گونه علاقه مجاورت دیگه یا میگه فلانی تو قران میگه میگه یقولون به افواههم اینا با دهانشون میگن ها منظور با زبانشون مید. این علاقه های مجاورت هم وجود دار با. لازم و ملزوم. خوشو میگه خورشید اینجا رو روشن کرده. خورشید روشن کرده یا نور خورشید؟ نور خورشید. ملزومو گفتیم و اراده لازم خورشید اینجا رو گرم کرده. خورشید گرم کرده یا حرارت خورشید؟ علاقه لازم و ملزوم، علاقه مجاورت، علاقه آلیت اینها هم هست. شما میتونید بفهمید. چون من این پس رو قبلا توضیح درست و دادم و بیان کردم دیگه دارم به قول خودمون یه مقداری مواحظ خودم رو تکرار میکنم وله مبحث راحت. الان نگاه کنید ایشون هشتا مثال زده هشتا. این هشتا یک تا هشت یک تا هشت چرا؟ چون توی علاقه ها هم که شمورد هشتارو شمورد سببیت، مسببیت، جزئیت، کلیت اعتبار ماکان، اعتبار مایکون محلیت، حالیه هشتارو شمورد قال المتنبی حالا یکی یک که شروع کنیم بکنیم قال المتنبی لهو ایاد متنبی گفته محتمی کرده سیف و دولار. میگه لهو عیادن، عیادی جمع عیدی عیدی جمع ید ید یعنی دست همه که انگشتان ما توش است و دست لهو عیادن برای او دستانیست دست علی علیه سابقتون این علیه و سابقتون سابقتون صفت عیادن. برای او دست هایی یعنی شاملتون فرا گرفته است مرا. احاته کرده است من او دستهایی دارد که مرا احاطه کرد اعد و منها صفت بعدیه برای من خودم از این دستها به حساب میام یعنی این دستها اینقدر من رو فرا گرفتن مردم فقط این دستها رو میبینن اعد دو یعنی احسب حساب میشم من خودم از این دستها ولا اعد دوها و هر کارم بخوام بکنم بشمرم این دستخواد چند تاست ممکن نیست خب الان ما داریم میبینیم دیگه این لهو ایادن خب اون آقا که دستخواه نداره که دوتا دست بیشتر ندارد بسی ای ایادن مجازه بعد که میخونیم میگه منو فرا گرفته من خودم دیگه مبالغه کرده از این دست ها به حساب میان درست شد یعنی انقدر اینا زیادن یک کسی من رو نمیبینه هرچی میبینه نعمت بونه دست بونه ولی دوها، هر کارم میخوام بکنم بشمرم نعمات و دست های نمیشه وقتی ما انگام کنیم که منظور از احیاده اینجا نعمه ید گفته و اراده نعمت کرد ید گفته و اراده بگید. نعمت کرد حالا ید سبب نعمت مسببه بعضی همینو گفتن نه ید آلت نعمت اون چیزیست که از این آلت برمیاد. بیاد اینو از علاقه های که من گفتم گرفتن حالا ایشون گفته سببید ید سببه و نعمت مسببه مجرد دیگه هم مشخصه مشابهتم نیست اینطور نیست که نعمت رو تشبیه کنن به دست بلکه نعمت مصدبه از دست حالا گاهی موقع دست میگن و اراده قدرت میکنند. و مثل الله فوق عیدی هم دو تا مجاز مرسل داشت یدالله فوق عیدی هم دست خدا بالای دست هاست یا نزد ید اراده معنای حقیقه شده نزد عیدی وقتی دقت کنیم منظور خوب یدالله فوق عیدی یعنی قدرت الله فوق قدره هم جمع قدرت خب ید بگیم و اراده قدرت کنیم یاد بگیم اراده قدرت کنیم ید سبب قدرت مسبب همزوز درست شد قدرت از ید نشهد میگیره یا یاد آلت قدرت اون فعلیه که از این آلت نشهد آلیت اینو بگفتیم پس دیدیم که هست لحو هو علیه عليا سابقهن او منها ولا اعد القوايم میگه يقول ان للممدوحه علیه نعما شاملا برای ممدوح برگرده من هست نعمت های فراوانی وجودی عد من نعمه جوری که وجود من ها یعنی جسم من خیل منی که شما دارید میبینید عد من نعمه از نعمات او به حساب میاد و از استتی و انا النعم و من نمیتونم حصر کنم بشمرم این نعمتو یک دو و قال تعالی و یونزل لكم من السماع رزقا انزل یعنی یه باره فرو فرستاد ان انزله فی ليله القدر یک بار قرآن رو در لیدت القرد بر غرب نبی جرامی اسلام فرود آورد. اما نزل یعنی فرود اومد اما یوش یوش و من منال قرآن ماهو و شفاعون و رحمتون و نونزلو منال قرآن یعنی آروم آروم تو 23 سال و پیغمبر نازل میکن یونزلو یعنی به آرامی پایین میفرستیم. لکم برای شما متعلق به نظر من از سما از این آسمان از این آسمانی که بالای سر شماست برای شما کم کم کم کم میفرستیم چی رزقن رزقی را خب این رزقان مفعول یا رزق؟, رزق بریم تو لغت نگاه کنیم یعنی اون چیزی که ما بهره میگیریم و میخوریم و استفاده میکنیم مثل نول و پنیر و گوشت و میگاه تو اینا رزق روزی هیچ وقت اینها از آسمان برای ما ریخته نمیشه. اصلا نمیشون بلکه از آسمان برای ما چی میاد مطرند باران. بارانی که یوسبب و رزقن ایجاد رزق میکنه سبب رزق میشه بارانی که ایجاد بارانی که ایجاد رزق میکنه و سبب رزق میشه یو سبب رزقن. یعنی در واقع انگار اینطوری گفته یونت زلولک و منت سماه مترند یو سبب پس ببینید این مجاز مرسل یه فایده هم داره دیگه فایدهش چیه؟ کلام موجست شد نه؟ یعنی اگر میخواست باز بگه حقیقت بگه اینطور طور میشد یا نه از من از سماه یا ببا رزغن ولی الان یه رزغن گفته همه اونو میفهمونه یا اون بالا بعد میگفت لهو نعمان ین من ایادی لهو نعمان ین شعو من یدهی لهو نعمان یعنی برای اون نعمت تن یا توسببو من یدهی برای اون نعمت است که به دست میاد تحصولو من یده از او اما ما همین رو میفرد نگاه کنید بحث رو عرفت اندل استعاره من المجاز اللغوي خلص شناختی که استعاره از مجاز لغوی و لفظی و انها کلمتون گفتیم چون کلمه رو میگه ترکیب رو به قول خودمون کمه گذاشته تو اش و انها استعاره میگه کلمتون البته در درس استعاره ترکیب رو هم گفت ولی چون قومون که بیشتر کلمه رو داره و انها کلمتون او ترکیبن استعمل از غیر معنا لعلاقت المشابهت استعاره کلمه ایسی یا ترکیبیست که استعمال شده در غیر معنای خودش لعلاقت المشابهت و علاقه مشابهت بین المعنیین نعلا اصلی و المجلسی علاقه مشابهت از بین معنیه اصلی و المجلسی و نحن و با و ما تو این از تو میخوایم در اینجا ان تعمل علامسلت از صادقه این مثال که بالا داریم میگیم که دوتاشون من گفتم توش دقت کنی. و انتب فیما اذا کانت مشتملت علی مجاز و جستجو کنی در اون جاهایی که توش مجاز هست حالا یکی که میگه انظر الی کلمت عیادن نگاه کن به کلمه عیادن فی قول متنبی در قول متنبی اتظنا انهو اراد بها العیدی الحقیقیت آیا فکر میکنی منظورش دستان واقعیه لا نه چون دوتا دست بیشتر نده عیادن چیه؟ جمع جمه این نهو یورید و به ها نعم قطعا اینطور نیست بلکه او اراده کرده از این نعمت نعمت ها نعم جمع نعمت فکلمت و عیادن هنا مجاز ولاکن هل ترا بین العیدی و النعم مشابهتا، آیا بین عیدی عیادن و نعم نعمت ها مشابهت هست که بشه استاره؟ مشابهت لا نه فمن علاقه تو ازن بین انعرفت و فی ما و منت دروس انل کل مجازن علاقت. پس علاقه چیه در اینجا میگه مگه علاقه لازمه میگه بعد تو شناختی در درس گذشته که هر مجازی باید علاقه داشتوش ولی علاقه باشه اصلا غلطه میگه و انل عربی اطباست به جای اون انل کل مجازن هم. این تو شناختی که هر مجازی باید علاقه داشته و ان العربی لا یرسل کلماتن فی غیر معناها الا بعد وجود صله و علاقه بین المعنیه و اینکه هیچ عرب زبانی نمی آورد کلمه ای را ارسال نمی کنه کلمه ای را در غیر معنای خودش مگر بعد از وجود سله و علاقه ارتباط و علاقه بین دو معنا حتما باید علاقه داشته ولی غلطه نه تنها هیچ عربی بلکه هیچ انسانی جنین نمیکنه مجاز تو زبان فارسی هم همین تو زبان انگلیسی هم همین تامل تجد دقت کن خواهی یافت ان الید علی حریجیته الاتی تمله که اون دست دست حقیقی این دستی که ما و شما داریم چیزیه که خطا میکنه تمله نه نعمت رو میده فیه سببن فیها پس این سبب در نعمته بله علاقت و از سببیت و علاقه سببیته حاضر و حاضر کسی و شاه اون فی لغت العرق. این خیلی زیاد در لغت عرب که سبب رو بگن و اراده بگید مسبب کن سن منزل الاغولیهی تعالی برد نگاه کن به کلام الهی و یونه زلو من از سماه خدا از آسمان برای شما رزق می میگه الرزق لا ینزلو من از همهمون میدونیم که این رزقی که ما میخوریم از آسومون نمیریزه ولیکن الذی ینزلو مترون ولی اونی که از آسمان میاد بارانه ینشا و النبات الذی منه منهو و, و رزقنا بارانیه که نشعت میگیره از اون گیاهان گیاهانی که غذای ما و رزق ما از اون گیاهان باعث میشن که دامها به دست میاد و ما رزق و رو از همین کشاورزی و دامپروری ما غذاهایی که میخوریم از دو نوعه کشاورزی دامپروری همش هم بستگی به باران داره به آب داره فرزقو مسببونن علمتر پس رزق مسبب و ایجاد شده از بارانه فخوه مجازون علاقت تو مسبب گفته شده و اراده سبب شده یعنی باران درست شد؟ خب این رو دیدیم ما گفتیم که مجاز مرسل حلاقهی که ما نام علاقه رو از چی به دست میاریم نام علاقه رو از اونی که در عبارت ذکر شده حالا سبب ذکر شده بود تو اولی اراده مسبب شده میشه علاقه سببیت درست شد توی دومی مسبب ذکر شده بود مز رزق و اراده سبب شده بود باران میشه علاقه مسببیت خب بریم سر سومی و چهارمی. میفرماید که کم به اسنل جیشه، کم به اسنل بهاثنا یعنی معموریت دادیم کم یعنی کم مرت چندین بار بارهای متعدد بهاثنا معموریت دادیم کم به اثنا الجیش افلا اغظ از مضافانه یعنی جیشنا یعنی این لشکر پس بارها و بارها معموریت دادیم این لشکر را الجشن. جرار هم. حال است از برای جشن در حالی که جرار بود جرار یعنی خودشون میکشید رو زمین میرفت. اینقدر زیاد بود که این لشکر کسیر انگار که یه پارچه رو زمین خودشون میکشید و میرفت درد شد یعنی یجر رو نفسهو خودشون میکشید و میبود یعنی لشکر فرابان پس چی گفت؟ گفت ما بارها و بارها لشکر خودمون رو اون هم لشگری خیلی کسیر آزم کردیم دادیم و ارسلنا نا اتفای از بجای و معموریت دادیم فرستادیم ال اویونه یعنی اویونه نا ال وز از وزای از مضافه نایم سنجد. و چشمانمون را رو چشمان رو فرستادیم وقا تعجب به اینکه میگه لشکر فرستادیم و همیشه لشکر رو به قول خودمون قبل از اینکه لشکر بره یه عدهی آدمهای استخباراتی آدمهای امنیتی آدمهای اطلاعاتی جلوتر میرفتن اونها مقدمه تلجش بودن uyun جهش بودن جلوتر میرفتن که اگر دشمن کمین کرده یا دشمن میخواد قافلگیرشون کنه، اونها متوجه بشن لشکر شبیخون نخوره، قافلگیر نشه. همیشه این بوده. با توجه به اون کم به اسناد جرارن و ارسال نامم میفهمیم که این اویون اینجا به معنای واقعی خودش نیست. که منظور از این چشمها این چشمها منو در وردی فرستادیم رف، اینکه نیستش که. پس منظور از این که چشمها منو فرستادیم، یعنی جواسیسنا آن. گفتیم جاسوسامونو فرستادیم. پس اویون گفته و اراده جاسوس کرده جاسوس یه پیکره است از نوک انگشت پا تا طوق سر چشم یه جزشه جز او گفته و اراده کل کرده قبلا ما گفتیم هر جز ای رو نمیگیم و اراده کل کنیم جز ای رو میگیم که تو اون کل و اون کاری که میخواد بکنه نقش داره نقش حساسی برای جاسوس چشمش اونصور اصلیه که جاسوسی باش بکنه برای مثلا فرض کنید بگیم که زبان کلاس آمد منظور از زبان یعنی ناطق سخنگوی کلاس اگه گودیم بازوی کلاس اومد منظورمون یعنی قلدر کلاس اون کسی که یاور کلاسه آه بازوی این جماعت فلانیست درست شد نه یعنی اون مدافع اون کسی که قادره و از اینها دفاع میکنه پس هر چیزی که میخواد جزء باشد و ازش اراده کل باشه باید جوزی باشه که در اون کل و اون کاری که میخوایم از اون کل که اینجا جاسوسی کردنه نقشه اساسی داشته باشه و هرسل نل اویونا خواهیم میگه الجیشل جرار از سقیل و سیر لکسرته اونی که خیلی سنگین حرکت میکنه به خاطر فراوانیش بریم سر چهارم و قال تعالی على لسان نوح علیه السلام خدای تعالی از زبان حضرت نوح علیه السلام اینطور میکرد و انی آن نوح نهصد و پنجاه سال قوم خودش رو تبلیغ کرد دعوتش کرد پنجاه نفر به او گرویستن یعنی پنجاه نفر بهش ایمان آورد بعد دیگه خسته شد ها؟ به خداوند تعالی هرس کرد خدایا اگر بخوای اینا رو ولشون کنین آدم های ناجور و اینا همین پنجاه نفر هم از دست ما در میارد اینا آدم به شونیستن این همه سال ما تبدید کردیم هیچ پیشرفتی نداشت این شد پس اینها دیگه اتمام حجت شده خدا ورشون دار گفتش که وقال تعالی علیه سال علیه السلام خداوند فرمود بر زبان نوه و اینی یعنی از زبان نوه اینطور گفت و اینی کلما دعوت هم لتقفر الله هم جعل هم بیازانه هم. خدایا اینی کلما یعنی هر دفعه هر زمان دعوت هم من اینها رو دعوت کردم هر وقت اینها رو دعوت کردم دعوتشون کردم برای چی؟ لتقفر لهم له برای که تو از خطاهاشون بگذری ایمان بیارن از گناهانشون بگذری و اینها مؤمن بشن و اهل بهشت بشن. هر دفعه اینها رو به راه راست دعوت کردند، جعلو. قرار دادن. اصابه انگشتان انگوشتان خودشون و به قرینه جعلو و فیازانه هم. می فهمیم اصابه. از نو که این انگشت سر ناخون هست تا بیخ انگشت این را که نمیتونن تو گوش خودشون بکنن به فرین جهل و فی آزانه میفهمیم که منظور از اصابه انامله انامل با همزه انامل جمع انموله یعنی سر انگشت اگه فرموده بود جهل و انامل فی آزانه هم چی توش نبود ولی وقتی که بیان شد جعل و هم فی آزانه میفهمیم که عصابه رو نمیشه در گوش گذاشت پس منظور انامله عصابه گفته و اراده انامل کرده کلو گفته و اراده جز کرده مثل اویون گفته و اراده جوازیز کرد. حالا ممکنه بگید که خب اون بالا ما گفتیم که مجازتون رزقن عرض کردیم و تو اون لحو عیادن که ایجاز آورده یعنی بوده ينزل لكم من السماء مطرًا يسق ببرقا اینجا که اعصابه رو برداریم جاش انامل بذاریم خب یکی وزنشون هم یک کلمه هم یه اندازه اینجا مبالغه توشه مجاز فواید متحده دیده که ما یعنی اینها جوری سر انگشتانشون رو تو گوششون کرده بودن که انگار کل انگشتو کردن تو گوششون یعنی اگه میتونستن کل انگشتشون هم تو گوششون بکنن تا حرف منو نشنون این کارو میکردن این کارو بگو میکردن کل گفته شده و اراده بگید جوزه شد حالا نگاه کنید تو مدر اما, ال اما کلمه ال اویون فل بیت اما کلمه ال در این بیت به ها ال جواسیست منظور جاسوس هاست فلمرادوبه ها ال جواسیست و منل هینه و خیلی هم سالست میگه آهین نمیشه که چشم بگه اراده جاسوس کنه ماشاید اشتباه کنیم میگه نه و منل هیینه خیلی ساده است انطفخ محهن نسته مال ها فیزال که مجازی خیلی هم میتونید بفهمی که این مجازیه به قلیله کم بعض بحث نزجهش جراررن و ارل نرو اوویونا میفهمیم که منظور این دیس که چشمارمان رو در آوردیم هرراه با نشگر فرستادیم رفت. چون همراه نشگر جاسوس ها رو میفرستن. و به قول خودمون اون استخباراتی ها رو میفرستند و مناله یه نهانتف هم نستعمال حافیزا دیگه مجازی وله علاقه تو علاقه چیه اندل اینه جز اون منالجاز جاسوس. علاقه جز خود میگه فقط چشم شو گفت پا میگفت دست میگفت انگشت میگفت زبون میگفت اون صد جز داره چشم میگه چون ولها شعنون کبیرون فی زیرا برای این چشم شعن است در جاسوس این عضو اصلی در جاسوسیه چون مثل زبان که عضو اصلی در سخنگوییه، مثل بازو که عضو اصلی در توان و قدرته و لغاشن اون کبیران فا اطرقل جوز و اوری در پس جوز گفته شده و اراده کل شده و لذالکه یو قالو این نل علاقه هنه جزئی و به خاطر همین گفته میشه علاقه در اینجا جزئیه حالا نگاه کنید و اذا نظر در فیقول و اگه دقت کنی نظره بافی یعنی دقت کردن و اگه دقت کنی در کلام خدا و اینی کل نما دعوتهم لتقفر علیهم جعلوا اعصابههم هم اگر دقت کنی در این کلام خدا که قرار دادند انگشتان خودشون رو در گوششون حضرت نوح میگه هر وقت من اینا رو دعوت کردم که تو بیای اینها ایمان بیارن و ببخشیشون هر موقع اینا رو برای آدم شدن دعوت کردم انگشتشون رو کردن تو گوششون و نخواستن بشنبن آه و ازا نظرته و اگه تحمل کنی در کلام خدا که اینی کلما دعوتو هم لتفره لهم جر و از هم هم رعیته هر وقت دقت کنی اینو میبینی اندل انسانه لایستت و انیزه اسبههو کلها فی ازنه. آدم که نمیتونه همه انگشتش انگاشتشو بکنه تو گوشش میگه میشه و انل اصاب افل آیت الکریمته اطفقت و قرید اطراف این اینکه اصابه در آیه کریمه گفته شده و اطفقت اطلاف شده و اطراف اطرافها و فست شده کناره هایون یعنی انامیدش اوشه هایون فهیه مجازون علاقته و کلیه مجاز و علاقه کنید خوب حالا 5 و 6 رو نگاه کنید 5 و 6 به علاقه گذشته یا به علاقه آینده اینو ما خیلی استفاده میکنیم به علاقه گذشته به علاقه آینده مثلا طرف گذشته استاد این بوده تو دو دوره لیسانس الان دیگه نیست اینم دانشگاه عوض شده و بقول خودمون چند هم ندیده حالا دیده سلام علیک میکنه یکی ازش میپرسه ایشون کیه میگه استادمه استادمه خب استادمه یعنی الان استادمه مو استادش نیست که این در گذشته استادش بوده الان دیگه استاد نیست یا یه سرهنگ بوده بازنشسته شده الان دیگه پیرمردی اومد میگه جناب سرهنگ تو سرحنگ نیست که یه زمانی لباس داشت و تو حدش بود و سرهنگ بود الان دیگه نیست درست شد یانه این به علاقه ماکانه به علاقه بگید گذشته خیلی زیاد ما استفاده میکنم میکن. یا به علاقه آینده م? به علاقه آینده تازه کنکور قبول شده زفته ترم اوله زشته پزشکیه میبینن میگن خانم دکتر آقای دکتر دکتر نیست که آینده یا تازه میخواد خواهد خودمون این رو خاستگاری کنه برای پسرش یا بگیره میگه این کیه؟ میگه عروس همه عروسش نیست که عروس. یا سی سال بعد می بینه میگه این کیه؟ سی سال پنششتان ازش نوه داره. میگه این کیه؟ میگه عروسم. و عروسش که نیست که نه زن پسرش رو عروسش بود سی سال پیش به اعتبار گذاشته میگه به اعتبار آینده هم میگه ما اینو زیاد استفاده میکنیم انقدر این مجاز در کلام ما زیاده که گاهی اوقات ما اصلا واقعیت مجاز بودنش رو درک نمیکن باید دقت کنیم تا درک کنیم فایده هم داره ها به جای که برگرده بگه این سی سال پیش عروس من بود از سی سال پیشم هم تا زن پسرم چند تا نوه داره وقتی میگه عروس هم شما نگاه میکنیم میفهمیم یا به اعتبار آینده میگه عروس همه یعنی امید دارم که این ما بریم و خاستگاری مثبت بشه و همه شرایط درست بشهیم بشه عروس همه. نگاه کنید پنج رو آیه قرآن و آتولیت ها ما انوال یعنی بدهید دو مفعولیه الیتاما ها ما مفعول اولشه انوالهم هم مفعول خدا میگه بدهید به این یتیمان علیت همان اموال هم اموالشون یتیم کیه؟ یتیم کسیه که پدر خودش رو از دست داده پدر خواهد. و به سن بلوغ هم نرسیده ولی اگه یه نفری مثلا 30 سالشه پدر خودش رو خدایی کرده از دست بده این یتیم به حساب نمیاد زیر سن بلوغ اونم پدر میشه یتیم مثلا یتیم یعنی این درست شد و آق طولیت و انوال ها بدهید این ظاهرش اینه بدهید به این یتیمان اموالشون آیا منظور اینه که به یتیم مثلا یه نفر یک سال شد. یه مقدار زیادی ارث رسیده به اون این کلشو بدیم بهش بگیم بیاییم ملتقون چکار میخواد بکنه از به میره که خدایی که اینقدر گفته یتیم داری کنید حتی شبین نره اینو میگه پس منظور از الیتاما اینجا چیه؟ یعنی یتاما ول آنقد بلقون درست شد و هم البالقون الان لنی کسان که در گذشته یتیم بودند پولشون پیش شما بود؟ اموالشون پیش شما بود الان بالغ شدن دیگه یتیم نیستن اموالشونو بهشون بدید چقدر جمعه چون ما میفهمیم به ای که میگه آتو امواله هم اموالشونو بدید و خود خدا هم تو قرآن میگه لا تو تو به صفیح آدم اموال نمیده خب ما میفهمیم دیگه تو می یتیم نمیتونه اداره کنه پس این منظور از یتیم اینجا کسانیه که به سند بلوغ رسیدن دیگه میتونن الان شما هم اگر فرض کنید یه نفری الان سنش 20 سالشه تو دو سالگی پدرش از دست داده انوال پدرش مثلا پیش اموش بوده پیش کسی بوده الان این به سن 20 سالگی رسیده او همچین به قول خودمون یه مقداری این پا پا میکنه در این که مال رو پس بده شما دستور رو, رو میگیرید میبرید پیش این شخص بهش میگید که انوال این یتیم رو بهش بده اون رو دارید نشون میدید این آدمم 20 سالش خون خب میتونه بگه این یتیم نیست که تو میگه این یتیم منظور یعنی این که یتیم بوده و الان بالغ شده اموالش بیش تو بوده بهش بده به اعتبار گذشته داری بهش میگیدی مثل که به اعتبار گذشته بهش میگف احروس من به اعتبار گذشته بهش میگف سرهنج یا استاد و آتو علیتاما انبارا این یک دوبام نگاه کنیم به اعتبار گذشته بود و قالت حالا الا نسان نوح علیه السلام خداوند حالا باز از زبان نوح علیه السلام این گفته همون قوم لجوج رو این نکه این خدایا اگر اینها رو رهاشون کنی تزرخم یعنی تترکهم خدایا اگر اینها رو رها کنی یو ظل گمراه میکنن بندگان تو رو یعنی همین پنجا نفر بنده تو که من اینها رو هدایت کردم اینها رو از راه به در میکنن یو ظل و عباده کن و الله الا و خدایا لا یلدو اینها نمیزایند یعنی از اینها بچه‌ای به دنیا نمیآید مگر فاجر و کفار یعنی لا یلدو الا ولدن فاجرا کفار نمیزایند اینها مگر فاجر کفار اینها فقط فاجر کفار به دنیا مییارند خب سوال اینه یعنی لا, ول... لا یلدو الا ولدن فاجر میگه اینجا صفت این فاجر نکرد لا یلدو نمیزایند مگر فاجر کرد مگه کسی میزاد فاجر کفار میزاد بچه که به دنیا میاد که فاجر کفار نیست کل مولودن یولد علی الفطره و عبواهو یا همودانهی و یو نسرانهی و یو مجلسانه. هر فرزندی که به دنیا میاد با فطرت خدایی به دنیا میاد بعدن که بالغ میشه و انتخاب میکنه کافر رو منافق میشه بلا اولش که کافر فاجر، بد، بدکاره، کفار، کافر اونم خیلی کافر که نیستش که ناص و پاسو کافر شدن و بعد شدنش بعد از سن بلوغ این که اینکه میگه لا یلدو الا فاجرا کفارا نمیزایند مگر فاجر کفار منظور یعنی چی یعنی نمیزایند بچی که بزرگ بشه و به سن بلوغ برسه و کافر و فاجر نشه به اعتبار آینده اون بچه بهش اطلاق کرده فاجر کفار مثل که تو قرآن میگه ما به زکریا بشرناه و به غلام بشرناه و به غلام اگه گفته بشرناه و به رضی به یه بچه شیرخاره بشارتش دادیم خوب درست رود. غلام یعنی یه جوان او را بشارت دادیم به جوان که ما یه جوانی میخواییم به تو بدیم جوان که بهش نمیداد بچه شیرخواره میده که میمونه و روشت میکنه و میشه جوان به اعتبار آیندهش بهش گفت جوان دیگه درست شد این نکر ای خدایا اگر اینها رو رها کنی یوزل زل و این بنده کمیم که من هدایتشون کردم گمراه امراه میکنن و امیدی هم به اینکه از توی این آدم در بیاد نیست اینا هر کی هم ازشون به دنیا بیاد می ماند و فاجر و کافر می شرد و لایل دوی نفاجرند کفار حالا بیاید نگاه کنید ثم عمل قوله تعالی بعد قول خدای تعالی رو توش تحمل کن و آتولیت ها ما انواله بدهید به یتیمان انوالشون تجد دقت کن خواهی یافته ان اليتيم في لغت هو الصغير خياف يعني یتیم در لغت بچه چه است که الزی مات ابوب بچه کوچیکی است که به سن بلوغ نرسیده و پدرش از دست داد فهل تظن ان الله سبحانه یعمر به اعطاء ها ما از صغار انوال ابائه آیا تو گمان میکنه خدای تعالی باره امر میکنه که شما بدهید به یتیمان اونم یتیمان کوچک اموال پدرانشون رو بدید اموال پدرانشون بدید به اینا غیر معقول واقعا معقول نیست که خدا بگه این همه توصیه به یتیم داری کرده حالا بگه اموال بچه یه ساله رو بدید بهش بله واقع بلکه حقیقت اینه انالله الله رو به اطاع الانوال بلکه خدا هم میکنه به اینکه که شما اموال رو بدید به کی؟ یامر رو به اعتایل امواله من این من مفعول اول اعتایل اموال مفعول دوامش بدهید اموال را من به کسانی که مثل سن نرشد رسیدن به سن رشد. بعد انکان و یتاما بعد از اینکه یتیم بودن الان به سن نرشد رسید. درست شد؟ فکر کلمت و علیه ها ما هنها مجاز پس کلمه یت ما در اینجا مجازه نه همه ها استوملت فراشدین فر یعنی علبالغین استعمال شده در مورد افرادی که به سن بلوغ رسیدن وله علاقت و اعتبار ماکان علاقه هم اعتبار ماکان ماکان یعنی گذشته اعتبار ما مذا سن منظر الاغولی تالا بعد نگاه کن به کلام خدای تالا ولا یل دوی لافاجدن کفار تجد دقا کن میبینی ان فاجرا و کفارن مجازان این دو تا مجازه چرا؟ لعن المولودهی نیولدو زیرا مولود موقعی که به بی دنیا بیاد لا یکون فاجرن ولا کفار، این نه فاجره نه کفاره ولیکن قد یکون ولی گاهی اوقات بر سر فرموزاره این گا. گاهی اوقات قد یکون کذالک گاهی اوقات این چنین میشه یعنی فاجر و کافر میشه بعدت بعد از کودکی بعد از اینکه بچگی رو گذروند به سن بلوغ رسید فوت لگا ال مولود الفاجر پس اطلاق شده مولود فاجر و بهی الرجل الفاجر و منظور رجل فاجر با علاقت و اعتبار ما ندون بچه گفته شده و اراده بالغ شده مرد شده درست شده خب این هم از این واقع بود توانستیم و دیدیم میان سر مثال هفتم و قالت حالا محل گفته شده و اراده حال در اون محل شده مثلا شما تو سوره یوسف میخونید میگه وسعل برادران یوسف میگن وسعل یعنی بابا بپرس وسعل القر التی کن القریت عتی کننافی ها، بابا اگه حرف ما رو قبول نمیکنی که میگیم بنیامین به قول خودمون دزدی کرده و گرفتنش؟ برو ل بپرس. ال اون دهاتی رو که اون شهری رو که عتی کننافی ها ما توش بودیم که اومدن یه ما رو گرفتن و پیمانر از باری بنیامین دروردن ها برو اون... شهر رو بپرس اسأل سوال کن الغریته شهری را که اون شهری رو که ما توش بودیم اون غریه و روستایی رو که ما توش بودیم اون محلهی که ما توش بودیم و پیمانه را در بپرس. حالا یعقوب بپرسه شهر را الغریته روستا رو بپرسه نه همه میفهمید منظور اینجا چیه یعنی بپرس بگو بپرس مردم اون قریه رو. یعنی اسال وسال احل قریه ایجاز داره دیگه به جای که بگه اهل قریه احلو نگفته قریه گفته و ما اهل میفهمیم. محلو گفته و اراده حال یعنی مردمانه در اون محلو گفته غرینه اسال, اسال. محید رو فهمید حالا اگه اون رو فهمیدی اینم میفهمید مثالش هم زیاده مثل اینکه دیدید میگه این بشقاب مال شما سوا بخور خب این بشقاب بخوره منظور یعنی این محتوی بشقاب دیگر یعنی غذای داخلی این بشقاب مال شما بخور حالا میگه این بشقاب سهم شماست بخور پشتاب که سهمت نیست که بخوری یعنی این این بشه. ما داریم به کار میبریم و زیادم هست قالت حالا فلیت و نادیه فلیت و نادیه پس باید صدا کند این شخص جهنمی نادیه نادی الان به باشگاه میگن ولی منظور محفل درست شد؟ اونجایی که هم پالکیاش با هم جمع می شدن و هم دیگر رو توش صدا میکردن نادی به این میگه. پس میشه محفل خودش رو صدا کنه. محفل رو صدا کنه یا مردمان داخل اون محفل یارانش رو که تو اون محفل هستن صدا کنه قطعا یعنی این دیگه ولید او به قرینه یه او می فهمید او نادیه محفل خود را صدا کند، بیاورد، سند و زبانیه، استیناف بیانیه، زیرا ما هم از زبانیه، یعنی شکنجگرانمون، زبانیه تناه، ما هم میخواییم، الفلام وزد از مضافانیه، ما هم میخواییم شکنجگرانمون رو صدا کنیم، یاراشو بیاره، ما هم رو میاریم، روز قیامت خدا به اینایی که تو این دنیا، به شعبون بی و یاران خودشون می نازیدن میگه برید برشون دارید بیارید ما نیروهامون اینجا داریم سند از زبانیه ما هم صدا میکنیم شکنجگران خودمون بیارید دیگه داره مزقرهشون میکنه تحکم این سند او هستش ها تو رسم الخط قرآن اینطور نوشته شده سند او از زبانیه اون واو توی التقال ساکنین میفته موقعی خوندن توی این مجزوم نیست سند او از زبانیه. هست ولی این که میخونی سند از زبانی تو رسم الخط قرآن همون ابتدا به این شکل نوشته شده همین طور هم نگرش داشتن چون قرآن رو رسم الخطش تغییر ندادن برای اینکه تحریف صورت نگیره پس اینجا شاهد ما سر نادیه هستش که به معنای اهل نادیه یه مثال من زدم وَسْعَلْغَرْ يَتَلَّتِكُنَّا این یک مثال بعدی پس اینجا نادی محل گفته شده و اراده اهل نادی شده مردمان اونجا حالش مثال هشتم و قال تعالی نان العبراره لهفی نئیم ابرار یعنی نیکان جمع بره تمامی نیکان تمامی مؤمنین. لفی نعیم یعنی با باو نولام تاکید کرده حتما در نعمتن نعیم یعنی نعمت نعمت یعنی خوبی خوشی میشه ابرار و نیکان در خوشی و ناز و نعمتن خب مگه ناز و نعمت خوشی چیزیه که ابرار برن توش خود ما میگیم فلانی در ناز و نعمت در خوشیه ها خوشی و ناز و نعمت چیزی نیست که یکی بره توش نیست که بگه فلانی تو خونه فلانی تو مسجده فلانی تویه پس اینجا منظور ان نل لفی نعیم منظور از نعیم یه چیز دیگه است یعنی ان نل عبرال لفی جنته دارشون ابرار در بهشتند بهشتی که حلت فیها نعم بهشتی که نعمت ها در اون حلول کرد نعمت ها در اون هست خوشی ها در اون هست پس ابرار در بهشتند بهشتی که توش بگید نعمت خوشی و خورمی و سرور و شادمانی هست پس اینجا حال گفته شده حاله یعنی اون چیزی که حلول میکنه که خوشی و ناز و نعمته و محل راده شده که بهشت باشه شبان اِنَّ الْعَبْرَالَلَفِي نَعِيم یا در قرآن میگه که مثلا مؤمنین فی رحمت الله اونا در رحمت خدا خب اونا در رحمه رحمت خدا چیزیه که مؤمنین توش باشن منظور از رحمت خدا چیه بهشت بهشتی که توش رحمت خداست. البته که ان العبد اولا بیاد بخونیم خب. دیگه راحت. اما قول او فلید و انادیه میگه ول امره ناله و من گفتم دیگه خدا اینجا که به اونا تو روز قیامت میگه برید شبون بی و یار یابرتون رو بیارید. امرشون نمیکنه که اونا برن بگردن بیارن نیروهاشون نسکه یه نفر به باباش می نازیده حالا یکی قول دستر اومده و میگه برو بابا تو بده برو, برو بابا تو بیار مزقرهشون دونه اینم هم همینطور ول امرو هنال سخریت ول استخفاف هم برای مسخره کردن از تو خفیق شمردن اونها سبک شمردن فعننا نعرف و زیرا ما میدونیم. انما معنى نادی مکان الاجتماع میدونیم نادی محفل مکان اجتماع بلکه المقصوده به هیفنایته کریمته من فی hazardous مکان من عشیرته و نصرائه ولی مقصود از این نادی در این آیه کریمه کسانی هستند که در این مکان بودند از خانواده و عشیره و و از یار و یاورانش منظور هم پالکی و دوستان و رفعه و خانواده شکل اینجاست فهوبه مجاز پس این نادی مجازه اطل قفیه محل اطلاق شده استعمال شده محل یعنی نادی و ارید حال و اراده حال شده فلعلاقه المحلیت پس علاقه محلیت و ارید حال فلعلاقه المحلیت شون محل شده میگه علاقه محلی و علزد منزالک درست برعکس این قوله تعالی ان الابرار لفی نعیم ابرار در نعیمند و النعیم لا یهلو فیه الانسان نئیم چیزی نیست که انسان درش هلول کنه فرو بره لئنه معنا من المعانی زیرا نعیم نعمت خوشی یه مفهومه از مفاهیم خوشی چیزی نیست که ما بگیم اینها رنگشم اینه اندازهشم اینه برتوش مثل خانه مثل یه مثل یه مسجد نیست و نعیم لا یهلوفی فیه انسان لعنه هون معنی من المعانی زیرا یه مفهومی از مفاهیم و انما نما یهلوفی مکانهی بلکه حلول میشه در مکان این نعمت نه یا و ان ما یحل انسان فی مکانهی در مکان این نعمت انسان حلول میکنه پس استعمال نیم پس استعمال نیم در مکان نیم فی مکانهی مجاز مجاز است اطن و فی حل حال گفته شده نعمت و در محل و محل اراده شده فالعلاقته فالعلاقته ال حالیت و علاقه میشه حالیت خوب اینم دیدیم ما ات گفتیم علاقه مجاورت هم هست علاقه لازمیت هم از لازم گفته میشه اراده ملزم میشه علاقه ملزومیت از ملزم گفته میشه اراده بگید لازم میشه علاقه مجاورت هست علاقه عالیت هست مثال زدیم علاقه ها متعدده حالا این من علاقات مجاز المرسل گفتی یه نکته ای که اینجا داشته باشید اینه دقت کنید نگه و ازا سبت کمار رعید وقتی که معلوم شد همون که تو دیدی ان لکل مجازن به ما سبق این هر مجازی از مجازهای گذشته کانت لهو علاقتون علاقهای دارد غیر المشابهت و علاقش مشابهت هم نیست مع قرینت منعت من ارادت من اصلی با وجود یه قرینه که مانع هست از اراده معنای اصلی این قرینه نمیذاره ما معنای اصلی رو به دست بیاریم اصلا نمیشه اراده کنیم وقتی ثابت شد همونطور که دیدی هر کلمه مجازی هر مجازی یا تمامی این مجازهایی که در سابق برات بیان کردیم همه شون علاقه دارن اصلا بدون علاقه نمیشه علاقهشون هم مشابهت نیست و همه شون قرینه دارن قرینه هم که مانه هست میشه از اراده معنای حیلی نمیذار شما معنای حیلی رو به دست بیاری فعلم پس بدان انها زن نو فعلم انها زن نو اضافه سبته فعل شرط چیم فعلم جزای شرط که جمله انشایی بوده فا گرفت پس بدان باور کن من لحاظاً این نوع از مجاز اللغوی این نوع از مجاز لغوی و لاستی المجاز المرسل میگن مجاز مرسل مرسل یعنی رها مرسل یعنی رها آزاد یعنی مطلق درست شد مرسل یعنی رها آزاد مطلق حالا به این گفتن مجاز مرسل من قبلا توی اون اول بحث بهتون گفته بودن که به این گفتن مجاز مرسل چون در قید مشابهت مثل اون یکی استعاره نیست اون فقط در بند مشابهت این از بند مشابهت رهاست درست شد علاقه های متعدد دارد علاقه هاش زیادتره الان داشت اینجا خوندیم سه چهار دیگه من گفتم. درست شد اما تعداد مجاز و مرسل در کلام از مجاز استعاره کمتره به خاطر همین هم درس آخر گذاشت و یه بحثم بیشتر نداره ولی از قید مشابهت ره است. در بند مشابهت نیست به همین دلیلش گفتن مرسل نباکنین هاشیه یک رو المرسل یعنی المطلق و این نما سمیه هاز المجاز و مرسلن. و این مجاز مرسل نامیده شده نه انهو اطلقه زیرا رها شده فلم یقید به علاقت خاصتن پس مقید به یه علاقه خاص نشد یه نکته ای را از کنم داشته باشید این رو اون اینه که که این علاقه هایی که شما دیدید مثل سببیت مسببیت جزئیت کلیت حالیت محلیت اعتبار ماکان اعتبار ما یکن علاقه مجاورت علاقه عالیت لازمیت ملزومیت و همسال این ها بروش شو این علاقه ها همه به یک اندازه تو استعمال نیست این علاقه ها همه به یک اندازه بگید نیست مثلا بعضی موقعاست اعتبار ماکان با اعتبار مایکون تقریبا برابره همشون استفاده میشه درست شده نه؟ اعتبار ماکان با اعتبار مایکون تقریبا برابره اینه که 100 تا مجاز از این دوتا داشت بشیم 50 تا 50 تا سن من این مثلا علاقه حالیت و محلیت محل گفته بشه و اراده حال در اون محل بشه خیلی بیشتر از اراده حال گفته بشه و اراده محل بشه مشخص شده نه؟ ولی هست هر دوش هست مثلا در مورد حال و محل محلیت خیلی بیشتر از حالیه مثلا در مورد فرض بفرمایید که جز و کل جز گفته بشه و اراده کل بشه یا کل گفته بشه و اراده کل بشه جز بشه تقریبا برابره ولی کل گفته بشه و اراده جزء بشه که مثلا بیشتر استفاده داره مثلا اینکه مثلا یه نفر میره کلاس میگیم ببین کلاس اومدن مثلا کلاس اون ما فرض کن 30 سی نفر 32 سی نفره و میگم ببین کلاس هستن نگاه می‌کنیم اینا 15 16 نفر 17 نفر 20 نفر هستن میگه کلاس Hazire کلاس هر کلاس حاضر است افرادی میگم همین که میگه کلاس هازه هست یعنی افراد کلاس این مجاز علاقه محل و گفته و اراده حال در اومده یعنی شاگرده کلاس هست این خودش مجاز. بعد از اون طرف بیس نفر بودن درست شد؟ باید بگه بعضی از افراد کلاس میگه دانشجوها اومدن خبیه این کل میگه و ارادهیه بگید جزشون میکنه درست شد؟ ما مجاز تو زندگی ما فراوان هست بعد از این اگر دقت بکنیم فواید مجاز رو بفهمیم خیلی جاها میفهمیم یعنی اون جایی که ما داریم واقعا این مجازها رو به کار میبریم برای اینکه کمتر عرف بزنیم اختصار زبانی داشته باشه، یا مجاز رو به کار میبریم برای اینکه مبالغه کنیم مثل اینکه کل رو میگه و اراده جز میکنه مثل جعل و عصابه و هم فیازانه هم آه؟ و موارد متعددی این بحث زی خب پس همه این علاقه ها هم در یه سطح از اندازه در استعمال نیست. بیاید توی نموزج. نموزج کتاب رو نگاه کنید. یکش. یه نفری میگه رفته مصر. رفته به مصر. از مصر اومده. میگم چه خبر؟ میگه شربت تو ما اندید. آب رود نیل رو نوشیدم. ظاهرش اینه که بگید شربتو ماع النیل یعنی کل رود نیل رو که از سودان جاری میشه و کشور مصر رو میپیماید و میره پایین من همه همرو نوشیدم این که ما میفهمیم به قرینه شربتو ماع النیل بگید این ماع النیل کلو گفته و ارادهی جزءشو کرد یعنی شربت و شربتن من ماء نیل یه مقداری از آب نیل رو نوشیدم کل گفته و اراده جوز کرده به علاقه شربتو درست شد نه؟ میگه یک ماء نیل یرادو بهی بعض ماهی فلمجاز مرسلون علاقه توهو ال عل کلیه تو کل گفته و اراده جمازک بسمتی از آبه رو دلیقه. درست شد نه؟ بابا هستی و زندگی داریم ما باشد دوارا نگاه کن میگه القا الخطیبو القا الخطیب بیان کرد این سخنران کلمتن کلمه ای را این سخنران کلمه ای گفت کانالها کبی رو لعصر این کانله ها کبیر صفت است بود برای اون کلمه اثر فراوان اثر بالایی داشت اثر زیادی بالاترین تاثیر رو داشت میگه این سخنران کلمه گفت اثر خیلی زیادی گذاشت کان ها کبیر و این کانله ها کبیر و خب شما به قرینه القا الخطیب و کان لها کبیر اثر میفهمید که منظور کلمه نیست کلمه نیست چون هیچ کجا نمیشه شما یک کلمه بگید و اثر اون مثلا جمله است که مفهوم داره و این. اینجا کلمه گفته شده جزء ها و منظور بگید کلامه منظور کلامه یعنی این آقای سخنران کلامی گفت سخنی گفت که اثر فراوان گذاشت. سخنی گفت که اثر فراوان گذاشت. کلمه گفته و اراده کلام شد مثل امیرالمومنین در مورد خوارج گفت کلمتو حقین و یوراد و به هن باطل این سخن حقیه میگن کلمه که نیست. سخن که حقی معنا و مفهوم داره این کلمت و و یراد به هن باطل این سخن است ولی اراده باطلی ازش شد درست شد یا تو خود قرآن هست اصلا بری سورا قرآن میگه روزه قیامت می که میشه این شخص جهنمی میگه رب ارجعونی لعلی اعمل و سال هنفی ما ترکت. میگه خدا یاد برگردونید منو. تو رو خدا منو برگردونید. لعلی اعمل و سال هنفی ما ترکت تا من یه سری کارهای خوبی رو که نکردم بکنم. منو برگردونید تا جبران کنم. اینو میگه. ارجعونی رب، ارجعونی لحلی عمل و صالحن فی ما ترد. قالم خدا میگه کلا یعنی هرگز یعنی غفشون همچی چیزی نیست کلا بعد میگه انها کلمتون هو قائل ها انها كلمتون. میگه اینی که این گفت یه کلمه ایست هوه قائل ها حرفشو میزنه عمل کنش نیست اگه اهل عملش بود تو دنیا بود میکرد اینه ها این یه کلمه بود گفتهش رب برجهونی لعالی عمر و سال هم فیمان ترکت کلام بود یه سخن بود پس گایی اوقات کلام اراده میشه از کلمه کلمه جزعه ازش اراده کل میشه کلام درست شد الگل خطیب و کان لها کبیر اثر الکلمت و یراد و به الْكلمة. الکلماتو یرادو به ها کلامون. فالمجاز مرسلان علاقت هو هل جزئیت و جز گفته شده یارادیه کل. سه و می‌ده که من براتون مثال زدم. سوره یوسف میگه واسع الگاریت لطیق نافیا. برادران یوسف به پدرشون میگن میگن واسعن. پدرجان بپرس. الگاریت اون قریه رو، اون آبادی رو ترجمه بکنیم دکنیم آبادی. اون آبادی چون نمیدونیم شهر بوده روستا بوده قریه به هر دو اطلاق میشه پس ترجمه میکنیم اون آبادی بپرس آن آبادیی را که مادرش بودیم و پیاله را از بار بنیامین نیامین خوب خب بپرس اون آبادی را هم؟ هلغریته هلفلام داره تعریفه اون آبادی رو که ما توش بودیم و از توی بار یوسف در اون را بپرس خب آبادی رو بپرسه از زنگو در و دیوار بپرسه منظور از اهل آبادی دیگه به قرینه اسعد سه س القریه تو یُراد بخوا احلها. مرسلان ها اهل ها منظور اهل فالمجاز مرسلون علاوته ال محلیه علاقش محلیت چهار رو نگاه کنید کشور مصر کشور آفریقایی گرمه تولیدشون هم پنبه است پنبه خیلی تولید میکنه و لباس های پنبه ای که سفید رنگ هم میشه در مقابل گرما و در مقابل آفتاب بسیار لباس خوبی است ها الان مثلا که من یه کتی دنم باشه یه نفر بگه این کت شما میگن بله این پشمه پشمه این پشمه یا این کته ولی از پشم گوسفند یا پشم شتر بافته شده این اصلش پشم بوده الان دیگه کته پالتوه درست شد ما میگیم این کت تنه یه نفره میگیم این کت شما میگه پشم آقا این پشمه پشم نیست بلکه این کتی است باید اینطور بگه این, این کتی است که به دست آمده است از پشمی که از حیوان چیدهاند و این همه رو میذاری کنار یه کلمه میگم. به اعتبار ماکان الان نگاه کنید یلبس و المصریون تمام مصری ها میپوشند مصریان به تن میکنند یلبس و المصریون القطنالذی اون پنبه ای رو که تنتجه و بلاد هم کشور خودشون تولید میکنه اونا پنبه رو میپوشند یا لباسهایی رو میپوشند که از پنبه تولید شده پارچهای رو که لباس شده و در اصلش پنبه بوده اونو میپوشند پس اگه می میگه ها به تن میکنند ای رو که کشور خودشون تولید کرده پنبه رو به تن نمیکنند آنچه از پنبه ساخته شده است استرو بتن میکنند درست شد پس اینجا منظور از قطن القطن یعنی المنسوج جمعن القطن اونی که به دست اومده بافته شده از قطن میگه القطن یرادو بهی نسیج یعنی منسوج فعیل به منا مفعوله نسیج کان قطن بافته شده که در اصلش قطن بوده اون رو میپوشند پارچه ای رو میپوشند که در اصل پنبه بوده قال مجاز مرسلون علاقت هو اعتبار ما کان ششمر نگاه کنید میگه صعوق و نارن میگم آقا چیکار داری میکنی میگه سعوق دو یعنی عش ال روشن میکنم صعوق دو نارن آتش روشن میکنه ما خودمون میگیم میگیم آتش روشن میکنه آتش که خودش روشنه روشن کردن نداره که سعوقد و نارن روشن میکنم آتش رو فلانی آتیش داره به پا میکنه روشن میکنه آتش که روشن نمیکنه آتش روشنه پس منظور چیه سعوقد و نارن ما ببینیم هیزم داره روشن میکنه باید اینطور بگه سعوقد و حتبن سیسیر و سیعول و سیکون نارا روشن میکنم حتب هیزمهایی رو سیعولو یا سیعکونو یا سیعسیرو که خواهد شد نارن آتش ولی به جایی که اینطور بگه بگه روشن میکنم هیزوم را که بعد از روشن شدن آتش خواهند گرفت ما میبینیم هیزم جلوشه میگه دارم آتش روشن میکنم ما میفهمیم منظور یعنی هیزم ها رو دارم روشن میکنم تا آتش بگیرم سعوغت و نارم نار گفته و اراده کرده هیزومی که به نار تبدیل می شود به اعتباره بگید ما یعول نارم یراد و بهی حتبون منظور هیزوم هاییست که یعولو یعنی یرجعه هاییاتو گفتن به اعتبار ما یکون هم میگن گن حتی اینجا غلط نمیشه بعد باید با تو تو واو بینیسه او کرسی واو باید هم نارن یرادو بهی حتبون منظور هیزومی که الی نارن آتش میشه فل مجاز مرسلون پس مجاز مرسله علاقتوهو درست شد اعتبار مایه کنید حالا همون سوره یوسف نگاه کنید یکی از اون دوتا زندانی که همراه یوسف زندان شدند خواب دید اون دیگری هم خواب دید اومدن خواب هاشون رو برای یوسف گفتند و یوسف هم تغییر خواب کرد برای اونها اینو قصهشو میدونید اما یکیشون گفتش که انی یادداشت کنید انی ارانی ارانی من دیدم خودم را تو خواب انی ارانی اعصرو اعصرو همزه عین صاد را عصر یعصرو یعنی فشرد اوساره گرفت آب گرفت انی ارانی اعصرو خمرن خوابشو گفت گفت من خواب دیدم دارم اوساره میگیرم خمر را خمر که خودش اوساره است اوساره انگوره خم رو که اوساره نمیگرفته خمرن الان مفعول اعصر است خمر که اصاره گیری نمی کرده بلکه چی داشته اصاره گیری می کرده؟ انگور انگوری که به خمر تبدیل میشه، آه، پس این در واقع خلاص گویی کرده یعنی چی گفته داشته می گفته؟ اینو می گفته ارانی اعصر و من در خواب دیدم آبگیری می کنم انگورهایی رو ستسیر و خمرن انگورهایی که ستعول و خمرن خمر خواهن شد پس گفت من تو خواب دیدم یه مقدار زیادی انگور رو دارم آب میگیرم تا خمر شوند میشه خلاصه گفته؟ خمر به اعتبار به انگورها گفته خمر انگورهایی که آب میگرفته به اعتبار مایکون مایعور درست شد؟ اینه ارانی من خودم رو تو خواب می اعصرو رو در حالی که اصاره گیری می خم را شراب را نه در حالی که اصاره گیری انگورهای انگورهایی رو که اون انگورها شراب خواهند شد دو تا مطلب رو گذاشتم برای جلسه آینده که یه مقدار تکرار توش باشه. یکی اون مجاز مرسل مرکب تو هاشیه اون هاشیه رو بخونم. و یکی این مثال پنجام که شعر است و یه مقداری نیازمند به اینه که شعر رو توضیح بدم. این دوتا رو گذاشتم. اول جلسه آینده میخوانن بعد یه بحثی در مورد مجاز مرسل خواهیم داشت. بعد وارد بحث مجاز عقلی خواهیم شد. الله. موفق و معید باشید سعی کنید که مباحث رو یاد بگیرید این مباحث فهمیدنیه اگر انسان فهمید دیگه راحته الفاظش هم فراموش بشه اصل داستان و اصل اون فهم برای انسان مفید است. موفق و باشید و السلام علیکم و رحمت الله ببرم